شادت گردن بار الہو سر زمین آرییان ما بدے یکتو پرستاں سنگرے داوات کرن ما بدے یکتو پرستاں سنگرے داوات کرن شادت گردن بار الہو سر زمین آرییان ما بدر یکه پرستون سانګره دا وات کرن ما بدر یکه پرستون سانګره دا وات کرن خدای ګنوار الله سرزمينه اوریا ما بدر یکه پرستون سانګره دا وات کرن ما بدر یکه پرستون سانګره کرن دفتر تاریخ عالم ثبت کردن او ما برگیتی گوشون مات فنه عشقال گرون ما برگیتی گوشون مات فنه عشقال گرون قله های شام خطر فاتحان چون سرکنن سر نگون اینجا همیشه پرچم جنگو ورن سر نگون اینجا همیشه پرچم جنگو ورن شودگردنوار الہو سر زمینے اور یہاں ما بری اکو پرستن سنگرے داوا کرن ما بری اکو پرستن سنگرے داوا کرن شودگردنوار الہو سر زمینے اور یہاں ما با چکن های زمان نخواافته در دومان تو متبر از مندگانی مو جنگ سروران مکتبر از مندگانی مت جنگ سروران، هر وجب از خاک پاکت سوک از خون شهید کشور آزادگانی میهن حق پروران کشور آزادگانی میهن حق پروران شاد گردان بارینا سرزمین آریان مبد یک تا پرستان سنگر دوت گران مابد یک تا پرستان سنگری دوات کرن شاد کردن بار اله ها سر زمین آریا مابد یک تا پرستان سنگری دوات کرن مابد شیر مردان مجاهد سر بلند بردوش تو خاک نفرین رفتایی بر جسه های چاکران خاک نفرین رفتایی بر جوسه های چاکاران آهن و ایمان در اینجا بارها جنگیدند غیر روبایی نبوده بهره ب باوران غیررسایی نبود بهره ب باوران شادگرد بار لا سرزمه آیان، ما بری یک تو پرستن سنگری ما بری یک تو پرستن سنگری داوات کرن شاد کار ما بری یک تو ما بری یک تو پرستن نوجی مستعفان از شر استمار توی عالم است دیون ایسارت و حکم داوران حالم مد یونی ای سارت حکم داوران دام تقدیر میکشد هرقدرت مبور را روز نابودی و سو مقدش در روز نابودی و سوی مقدش در خاوران شاد گردان سرزمین آلییان محبد یک تا پرستان سنگدهدعورد کردند. ما بدر یکه پرستون څنګه دا وات کرن ستګر دنوار الله سر زمينه اړیا ما بدر یکه پرستون څنګه دا کرن ما بدر یکه پرستون څنګه کرن